دندان روی جگر گذاشتم آرام نشستم سیگار کشیدم لیکو و قهوه خوردم و بانچ رئیس شهبانی می گفت گوش میدادم. دادم ما ازش در میآوریم. به علاوه دیگر چیزی از اون نمیخواهیم. فقط باید به ما بگوید که این نامه هایی که از پاریس و برلین برای او می رسد از کیست آن وقت دیگر کاری به اون نداریم پرسیدم. زجرش هم می دهید؟ گفت مجبوریم ولی بله از او چیزی در نمیآید. گفتم اگر بمیرد چه؟ گفت تقصیر ما چیست؟ بگوید راحت شود راستش را بخواهید تازه آن وقت هم راحت نیست چون که الله حضرت همایونی به اندازه از این قضیه عصبانی هستند که دیگر به هیچ وجه نمی شود خاطر مبارکشان را آسوده کرد پرسیدم میکشیدش گفت حقش که هست گفتم شما چه آدم های بدی هستید چیزی نگفت از این حرف من خوشش نیامد من این جمله را خنده کنان گفتم ولی مثل اینکه لحن ساختگی من خوب از آب در نیامد و حقیقتی که در آن نهفته بود سرتیب را رنجان موزه صحبت را عوض کردیم از عروس پادشاه بلژیک و افتضاحی که سردار اعظم کرمانی در مونت بال آورده بود و اشغال اتریش به دست قوای هیتلر و حریق قورخانه و دزدی در سفارت مصر و مشغله زیادش و اینکه با وجود این علاقه من دست که گاهی مرا ببیند و مطالبه دیگری که برای من به اندازه موی باری هم جالب و مشغول کننده نبود گفت احساس کرد که جوابهای سرد و پر از تکلف به می دهم زودتر از معمول بلند شد و رفت موقعی که به رسم خدافزی دست مرا را گفت به دل نگیرید چیزی نیست خدمت خانم مرز سلام برسانید من همان شب تصمیم خود را در زندگی گرفتم آقای نازم شما چه فکر می کنید؟ دیگر حرفی نمی زنید. سوالی نمی کنید؟ نظر شما در مورد من و اندازه سر سوزنی در جریان زندگی من تأثیری نخواهد داشت. بگویید: هیچ نگویید من از نگاه وحشت زده شما احساس می کنم که دلتان به حال من میسوزد. من از هیچکس تقاضای مرحمت نکردم. شما پل خودتان میگویید که من وازدم، ترسیدم شتاب کردم. نفهمیده تصمیم گرفتم. آخ، گفتنش آسان است. اما اگران شب شما محرم من بودید و من روح خود را به شما اوریان نموده بودم. شما هم دو دل می شدید و به این آسانی که امروز درباره حوادث گذشته قضاوت می کنید، رأی ثابت و قطعی نمی توانستید داشته باشید. درباره گذشته قضاوت کردن، کار آسان اما وقتی خودتان در جریان طوفان میفتید و سیل قرآن زندگی شما را از صخره در دهان امواج مخوف پرتاب می‌کند آنجا اگر نتوانستید همت به خرج آنجا اگر ایستادگی کردید اگر از خطر واهمه به خود راه ندادید بله آن وقت در دوران آرامش لذت هستی را می چشید چه خوب است چه آسان است این اینجور فکر کردن اما خودتان بسنجید آیا از من با آن ای که در زندگی داشتم با آن تززل و تشتتی که در هستی من لانه کرده بود با آن بیحالی و سرگردانی آیا چنین همت بلند از من بر می آمد؟ من دختر پدرم بودم یکبار که در زندگی به دشواری برخورد سر فرو آورد زانو به زمین زد زمین عدب بوسید و گوشه گیری کرد از من چه توقعی می توانید داشته باشید استاد هم با همین نظر تحقیر شما به من مینگریست. او هم حتما انتظار دیگری از من داشت این چشم های یک زن حوصران هرزه است او هم پهلو خودش همین فکر شما را کرد گفت محض اینکه جانم به خطر افتاد مثل مرقابی در مرداب در زجن پنهان شدم و از جوش و قرش دریا فرار کردم اما آخر استاد هم بی تقصیر نبود؟ می توانست در من تاثیر کند؟ چرا خود را در قفس سکوت محبوس می کرد؟ چرا نمی کشید راهی به قلب من باز کند؟ لازم نبود که من حتما زن یا محشوق او باشم؟ آیا نمیتوانست برای زندگی سودمندی که وارد آن شده بودم جلب کند؟ آیا نمیتوانست برعکس من را از خود و یا از آن دنیای پر تلاش راند و به دنیای ها فرستاد؟ چه فایده؟ چرا دم از خودم دفاع کنم؟ این دفاع نیست. همان که اول گفتم قسم فقط خالی کردن عقدهای است که دارد گلوی مرا میفشارد روز بعد ساعت ششونیم صبح قبل از اینکه به اش برود به سرتیب تلفن کردم و از او خواستم که پیش از رفتن به شهربانی سری به من بزند پرسید ماگر خبر تازه است گفتم شاید برای شما خبر تازهی باشد گفت می گفتم خواهش می کنم تشریف بیاورید صحبانه تان را اینجا بخورید گفت مشغول صرف صبحانه هستم الان می آیم اقلن این را باید شما درک کنید اتقاض تصمیم به این مهمی در زندگی من کار آسانی نبود کدام زنی است که حاضر باشد به دلخواه تن خود را بفروشد هیچ چیزی شنیدتر از این نیست که زنی خود را تسلیم مردی کند که او را دوست ندارد شما این ارطا این تنافر را هرگز نچشیدید آن هم نه برای یک شب یا یک بار و دو بار بلکه برای سالها، برای یک عمر آن هم زنی مثل من که سالها لحله مهربانی و نوازش مرد معشوق را داشته و دور دنیا دنبالان گشته است. زنی که بالاخره پس از گذاشتن از سنگداخ هستی تازه به پناهگاه واحد عشقش رسیده است.